در حجر گشادن مصطفی علیه سروات و سلام مصطفی صبح آمد و در را گشاد، صبح آن گمراه را او را داد در گشاد و گشت پنهان مصطفی، تا نگردد شرم ساران مبتلا تا برون آیت رود گستاخ او تا نبیند در گشه را پشت و رو، یا نهان شد در پس چیزی، و یا از ویش پوشید دامان خدا. سبعت الله گاه پوشیده کند، پرده بیچون بران نازر تند، تا نبیند خسم را پهلوی خیش، قدرت یزدان، از آن بیش است، بیش، مصطفی میدید دید احوال شبش، لیک مانع بود فرمان ربش، تا که پیش از خبت بکشایت رهی، تا نیفتد زن فضیحت در چهی، لیک حکمت بود و امر آسمان، تا ببیند خیشتن را او چنان، بس اداوت ها که آن یاری بود، بس خرابی ها که معماری بود، جامخا به پرحدس را یک فضول قاسدن آورد در پیش رسول که چنین کرده از مهمانت ببین خنده ای زد رحمتن دل آلمین که بیاران، نتره اینجا به پیش تا بشویم جمله را با دست خیش هر کسی می که از بحر خدا جان ما و جسم ما قربان تو را ما بشودیم این حدس را تو بهل کار دست دستیم نمت نکار دل ای لعم رو مر تو را حق عمر خواند پس خلیفه کرد و بر کرسی نشاند ما برای خدمت تو میزیدیم چون تو خدمت می کنی پس ما چین؟ گفت: آندانم ولی که این ساعتی است که در این شستن به خویشم است. منتظر بودند که این قول نبیست تا پدید آید که این اسرار چیست او به جد میشوز آن احداث را خالص زمر حق نه تقلید و ریا که درش میگفت کین را تو بشو که در اینجا هست حکمت تو به تو